پیرزنی پسری داشت بیست ساله که خیلی تنبل بود حتی حاضر نمیشد از خونه بیرون بره هرچی مادر پیرش بهش اصرار میکرد که برو دنبال کاری گوش نمیداد که نمیداد تا اینکه یه روز مادرش به اصرار زیاد وادارش کرد بره لب چشمه و دست و صورتشو بشوره تنبلو گفت مادر من از آب میترسم اما هر طور بود رفت و دست و صورتش رو شست و همین که خواست بلنشه چشش به یک گل قشنگی توی آب افتاد. خوشحال شد و گل گرفت و رفت به سمت خونه. در بین را تاجری چشش به اون گل افتاد و به پسر جوون گفت گلت رو به من میفروشی. پسر گفت که چند میخری؟ تاجر گفت ست تومن. تمبلو که قیمت گل نمیدونست گل رو داد و ست تومن گرفت و خوشحال و خندون به سمت خونه را افتاد. در خونه رو زد و مادرش رو صدا کرد و گفت که من صد تومن با خودم آوردم مادرش گفت دیدی گفتم از تو حرکت از خدا برکت اگه مرتب بری سر آب دست رو تو بشوری وضو بگیری نماز بخونی خدا بیشتر از این به تو برکت میده تنبلی و خوشحال شد فردا خودش رفت سر همون چشمه بود دست و صورتش رو شست و وضو گرفت و شروع کرد به نماز خوندن چند روز کارش همین بود یه روز همین که نمازش خون خوند خواست به خونه برگرده چشمش به دوتا گل افتاد که آب داشت براش می آورد گلا رو گرفت برد بازار نزد همون تاجری که گل اولو بهش فروخته بود پس از مدتی باز تاجر و تنبلو به هم رسیده بودم. تاجر گلها رو خرید. دیویستو هم بهش داد و به جوونم گفت اگه بتونی درخت این گلها رو پیدا کنی هرچی به بخوای بهت میدم. حتی آزرم تمام سرمایمو به تو بدم. تنبلو گفت اشالا که پیدا میکنم. روز بعد به همون ترتیب رفت لب چشمه دست رو شست و ازو گرفت و نماز خوند و با خودش گفت بهتری که برم سمت سرچشمه رود تا ببینم درخت این گلها کجا است. بسم الله گفت و اعتنایی به گلهایی که آب می آورد نکرد و رفت و رفت تا به سرچشمه رسید. تخت قشنگی اونجا بود. دختری روی اون تخت خوابیده بود. خوب که نگاه کردی دختر سرشیه طرف گذاشته شده و چند تا شیشه روغن هم کنارش. همونداره که به دختر نگاه میکرد فهمید هر قطره خون که از گردن دختر به آب میچکیده گلی میشده و آب میبرده. تنبلو فهمید که منظور تاجر این دختر بوده که اونو به درخت گل تشبیه کرده تنبلو با خودش گفت بهتره امشب اینجا بمونم تا ببینم چی میشه و این محل مال کیه؟ همه همهجارو گشت تا محلی برای موندن پیدا کنه که کسی نتونه بهش آسیبی برسونه در حین گردش چشش به چند راه زیرزمینی بزرگ افتاد نزدیکتر که رفت چند هزار نفر کشته و زنده رو تو این زیرزمین ها دید رفت بعد یکی از اونا که زنده بود اون شخص تا چشش به تنبلو افتاد گفت جوون کجا بودی تا شب نشده از اینجا دور شو اینجا خونه دیوه وقتی بیاد و تو رو اینجا ببینه حتما میکشد. تنبلو گفت چطور میتونم شما رو نجات بدم مرد گفت از این آبی که میبینی به خودت بزن تا دیو بوی تو رو حس نکنه. بعد برو زیر تخت. تخت همون دختری که سرش بوریده. اونجا قایم شد وقتی که دیو اومد ببین چی کار میکنه. قبول کرد و رفت زیر تخت قایم شد. هوا که تاریخ شد صدای دیو رو شنید. که تنور کشان اومد پایین سر تخت دختر شیشه روغن و رو برداشت یکم مالید به گردن دختر و سر دختر رو روی تنش گذاشت دختر بلند شد نشست دیو یکم این طرف و اون طرف رو نگاه کرد و گفت های های بوی آدمیزاد میاد دختر جواب داد ما کجا آدمیزاد کجا این بوی آدمایی که توی زیر زمین اسیر کردی دیو از عشق دختر اعتنای به بوی آدمیزاد زاد نکرد و به دختر گفت فکراتو کردی؟ حاضری همسر من بشی؟ دختر قبول نکرد دیو گفت اگر قبول کنی تو رو پیش پدر مادرت میبرم دختر در جوابش گفت هر چی که دیگران را بردی منم میبری انشاله خدا منو از دست تو نجات بده تنبلو تمام کارهای دیو و دیدو حرفاشونو شنید و به خودش گفت خدایا چرا صبح نمیشه دیو تا صبح اصرار کرد که بلکه دختر راضی کنه اما دختر راضی نمیشد تا اینکه صبح دیو سر دختر دخترو برید و کنارش گذاشت و رفت به ای کارش تنبلو که خاطرش جمع شد که دیو رفته بسم گفتو گفت و شیشه روغن رو برداشت و دور گردن دختر مالی و سرشو گذاشت به تنش دختر بلند شد و نشست تا چشش به پسر افتاد رنگش رو باخت و گفت ای جوان چرا اینجا اومدی خود تو به دام بلا انداختی زود سر من رو ببرو از اینجا برو که تو رو نبینه تنبلو گفت من بی تو از اینجا نمیرم به تاجری قول دادم تو رو پیشش ببرم و این کارو خواهم کرد. دختر که حد زده بود تاجر پدرش باشه، اونقدر گریه کرد تا از هوش رفت. تنبلو اونو به هوش آورد و گفت نترس، اگه خدا بخواد نجاتت میدم. بعد ادامه داد اگه میخوای نجات پیدا کنی، باید هرچی بهت میگم به دیو بگی و اگه دیو پرسید اینا رو چه کسی به تو گفته، بگی که کسی به من نگفته. دخترم قبول کرد تنبلو گفت امشب وقتی تو رو زنده کرد با او به ملایمت رفتار کن و بعد ازش بپرس شیشه عمرش کجاست هرچی اصرار کرد که چرا میخوای بدونی و چه کسی اینو از تو خواسته بگو کسی نمیخواد خودم میخوام بدونم دختر قبول کرد همین که غروب شد تنبلو سر دختر رو برید و رفت قایم شد بعد صدای دیف بلند شد که با چند آدمی زاد بخت برگشته از چا سرازیر می شدن دیف اونا رو برد توی زیر زمین ها و زندانی کرد و اومد برای سر دختر رو به همون قرار و ترتیب همشگی دختر رو زنده کرد و دخترم پیشنهاد تنبلو رو که قبول کرده بود با مهربانی با دیو رفتار کرد و حالشو پرسید دیو هم خب تعجب میکنه پرسید چطور شده امشب با من مهربون شدی؟ دختر گفت تو که میدونی من غیر از تو دل به کسی ندادم سؤالی دارم راستشو بگی میفهمم که واقعا منو دوست داری دیو گفت هرچی میخوای بپرس من راستشو بهت میگم گفت، حالا که میخوای راستش رو بگی بگو ببینم شیشه عمرت کجاست؟ دیو گفت دختر چکار به شیشه عمر من داری؟ گفت شیشه عمرتو به جونت بسته است به همین دلیل میخوام بدونم تو منو به اندازه جونت دوست داری یا دروغ میگی؟ دیف که دخترو خیلی دوست داشت گول خورد اما گفت فعلا سلاح نیست که تو اینو بدونی خودم بعداً بهت میگم دختر گفت کسی که غیر از من و تو اینجا نیست منم که فردا صبح سر ندارم پس دیگه چه بحانه ای داری؟ دیو قبول کرد و گفت یک فرسخی اینجا درخت کهنسالی هست پای این درخت چاهی هست که تخت سنگی روی اونه باید سنگ رو برداری و بری ته چاه اونجا علف که گاوی داره میچره توی شکم گاو دریاچه ایه. توی دریاچه یک ماهیه که شیشه عمر من توی شکم اون ماهی است اگه خدایی نکرده شیشه بشکنه توی چشم هم زدن من میشم یک شمش تلا تنبلو تمام حرفا رو شنید و خوب به خاطرش صبح طبق معمول دیوه سر دختره رو برید و رفت و بعد از این که خاطر جمع شد که دیو رفته چرخی توی زیر زمین ها زد و شمشیری پیدا کرد و رفت و رفت تا رسید به درختی که دیو نشونی شد داده بود پای درخت و کند تا رسید به یه تخت سنگ و تخت سنگ و برداش و چایی پیدا شد و از چا سرازی شد تی چاکر رسید، الافزاری دید که گاف توی اون میچرّه. گاف بهش حمله کرد، ولی تنبلو شمشیر کشید و شکم گاف رو پاره کرد. هر که گاف به زمین خورد، یه دریاچه آبی پیدا شد که یه ماهی توی اون شنا می‌کرد. تنبلو ماهی رو گرفت و شکمش رو پاره کرد و چیچه‌ی عمر دیو رو برداشت. یه مرتبه از هزار فرسخی تن دیو به سوزش افتاد. فهمید که شیشه عمرش به دست آدمیزاد افتاده. تنبلو از چاه بالا آمد و به طرف تخت دختر رفونه شد وسط را دیو دید که ترسیده و داره میاد وقتی دیو به تنبلو رسید ترسید و گفت ای بیچاره آدمیزاد اینجا چه کار میکنی؟ تنبلو جواب داد بیچاره تویی که شیشه عمر دست منه دیو گفت یالا شیشه رو بده ویلو میگوشه بد تنبلو گفت بیا بگیر اینم شیشتو و شیشه رو پرس کرد به سمتش دیو تا خواست شیشه رو بگیره شیشه به زمین خورد و شکست دیوه فریادی کشید و شد یک شمش طلا تنبلو شمشو برداشت و رفت سر چشمه اول دخترو زنده کرد بعد تموم زندانیا رو آزاد کرد اون وقت دختر رو برداشت و اوفر پیش تاجر تاجر و دختر از دیدن هم خیلی خوشحال شدن از خوشحالی به گریه افتادن بعد تاجر هفت شبان روز جشت گرفت و دخترش رو به ازدواج تنبلو در